پای 718 شاه صالح گفت من قبل از پریدن در دریا کلمات سری حج شده روی مهر حضرت سلیمان را زمزمه کردم و آن کلمات شخص را محفوظ نگه می‌دارد ما این کلمات را برای نوزادانی که در زیر دریا به دنیا می آیند زمزمه می‌کنیم تا بتوانند از دریا بیرون آیند و روی زمین حرکت کنند به طوری که شاهنشاه ملاحظه فرمودند من شاهزاده بدر را با خواندن آن به دریا بردم و او از این پس مسونیت یافته و تا پایان عمر میتواند هر زمان که بخواهد زیر دریا برود و در امپراتوری‌های وسیع زیر دریاها گردش کند آنگاه نوزاد را بدای سپرد سپس شاه صالح قوطی مخصوصی را که از قصر خود همراه آورده بود و به همین منظور با شاهزاده بدر به زیر دریا رفته بود گشود و سیصد دانه الماس هر کدام به بزرگی تخم کبوتر و به همان تعداد دانه های یاقود و سی رشته سین مروارید که هر رشته ده عدد مروارید بزرگ به اندازه تخم کبوتر داشت به اضافه چندین اسای زمورد به شاهنشاه تقدیم کرد و توضیح داد وقتی شاهصاد گلنار خواهرم مرا نزد خود فراخواند به من نگفته بود با چران پادشاه پراوازه ای ازدواج کرده است و من دست خالی به حضورتان آمدم. وقتی از مراهم پادشاه آگاه شدم به بناچار از همین پنجره به دریا رفتم و در همین چند لحظه این هدیه ناقابل را آوردم امید دارم شاهنشاه آرابه بپذیرند. شاه ایران در برابر این هدیه که در واقع گنج گرانبهایی بود خوشنودی و سپاس خود را اعلام کرد و گفت من از شاه ساله و ملکه مادر بسیار ممنونم که با رضایت به این ازدواج مرا خوشحال و آسود خاطر کردند و انتظار این همه محبت را هم نداشتم شاه صالح پاسخ داد این سنگ قیمتی در زیر دریا فراوانند و برای ما چنان ارزشی ندارد چند روز بعد شاه و ملک مادر و سایر شاه از شاهنشاه اجازه مرخصی خواستند و گفتند با وجودی که میگ دارند تمام عمر خود را در خدمت شاهنشاه ایران باشند ولی نمی بیش از این از کشور خود دور باشند و ناچار به بازگشت هستند شاهنشاه هم با مهربانی موافقت کرد و آنها از او و ملکه گلنار خداحافظی کردند و در لحظه ودا همگی گریستند شاهزاده بعد دوران کودکی را میپیمود و شاه و ملکه به تعلیم و تربیت او در قصر پرداختند و بهترین استادان و آموزگاران را در هر رشته از دانش برگزیدند و شاهزاده هم استعداد بسیاری در فرا گرفتن از خود نشان میداد ملکه مادر شاه و شاهزاده های دیگر هر از گاهی به دیدن شاهزاده بدر می آمدند او رشته رفته جوانی برومند شده بود که توجه خانواده و هر کس دیگر را به سوی خود جلب می کرد هنگامی که شاهزاده به پانزده سالگی رسید هوشیاری و استعداد فوق از خود نشان می داد به طوری که در تمام رشته های دانش و ورزش از استادان خود پا فراتر گذاشت و تحسین همگان را برانگیخت در امور مملکتی و اجتماعی نظرات سنجیده و پسندیده ابراز می‌کرد. پادشاه از آغاز کودکی به تیزهوشی و قریحه او پیبرده بود و او را جانشینی دانا و خردمند برای اداره کشور می‌دانست. خیالش آسوده بود که فرزندش کاملا با لیاقت است. شاهزاده رفتاری دوستانه و گفتاری بی‌پروایه و خالی از تکبر داشت و برعکس سایر شاهزادگان به دانجزی با ادب و مهربان بود که همه مایل بودند مشکلات خود را با او در میان بگذارند او هم همه را بدون تعارف و یکسان نگاه میکرد و خود را هم در ردیف آنان به شما میآورد. مردم دوست داشتند که شاهزاده زمام امور را در دست گیرد و پادشاه هم میدانست که انجمن رای زنان سلطنتی در انتقال سلطنت به شاهزاده و کفایت و خردمندی او موافقت دارند بنابر این روزی را که مراسم کنارگیری شاه از سلطنت و گذینش شاهزاده به شاهی باید انجام میشد در همه جا جار زدند و مردم جمع شدند و در حضور انجمن رای زنان و وزراء و گروه بسیاری از بلند دربار و عمراء کشوری شاه از تخت پایین آمد و تاج شاهی از سر برداشت و بر سر شاهزاده گذاشت و به عنوان اعلام وفاداری و فرمانبرداری دست شاهی جدید را بوسید در میان وزرا و امیران مملکت خود خود جای داد و تمام حاضرین در برابر سلطان جدید ادای احترام کردند کلیه وزرا و عمرا و اثران بلندپایه فوراً در برابر تخت شاه زانو زدند و هر کدام جداگانه سوگند وفاداری یاد کردند سپس نخست وزیر گزارشی درباره امور مهم کشوری به ادرسانید درباره هر کدام پادشاه برج نظر سنجیده و صحیح ابراز کرد و دستورات خردمندانه داد به طوری که مایی شگفتی انجمن رایزنان سلطنتی گردید همه بردانایی و آگاهی او ایمان آوردند شماری چند از استانداران را که رفتارشان پسندیده نبود از کار بر کنار و افراد شایسته و خوشنام به جای آنها برگزید و تحسین و شگفتی همگان را به سوی خود جلب کرد پس از پایان دادن به کارها از تخت به زیر آمد و همراه پدر پادشاه سابق به قصر ملک گلنار مادرش رفت مادر که فرزند را تاج بر سر دید شاد شد و دوان دوان به استقبال فرزند آمد و با خوشنودی فراوان او را در آغوش کشید سال اول سلطنت به خوبی سپری شد و گام های بلندی در جهت رفاه مردم برداشته شد سال دوم به بهانه شکار اداره مملکت را زیر نظر شاه سابق به انجمن رای زنان سلطنتی سپرد. و از شهر خارج شد ولی هدفش بازرسی و سرکشی از استانهای کشور و تحقیق درباره امور مملکت بود تا افراد بدون صلاحیت را از کار بر کنار و اشخاص لایق را به جای آنها برگمارد بعد از یک سال تلاش و سامان بخشیدن به اوضاع کشور شاه بجد به پایتخت بازگشت و در همین هنگام شاه سابق دچار بیماری خطرناکی شد و خودش میدانست که پایان عمرش فرا رسیده این به امیران و وزیران توصیه کرد تا در راه خدمت به ملت وفاداری نسبت به فرزند او از همراهی و کوشش خودداری نورزند سرانجام شاه بدرود زندگی گفت و او را با تشریفات شاهانه در آرامگاه با به خاک سپردند بعد از انجام مراسم سودواری شاه برد برابر شیوه جاری مدت یک ماه شخصا ازاداری خود را ادامه داد و در انجمن رای زنان سلطنتی شرکت نکرد و اجازه ملاقات به هیچ خودم از شاهزادگان و وزرا را نداد. در تمام این ایام، ملکه، مادر و ملکه گلنار و شاه شاهزاله و سایر شاهزاده خانوم ها در دربار ایران به سر می بردند و در تمام مراسم سوگواری با خانواده سلطنتی ایران همراهی و همدردی می کردند. مدت یک ماه سوگواری به پایان رسید. ولی شاه هنوز هنوز از شرکت در کارهای روزانه کشور خودداری میکرد تا آنکه نخست وزیر به او پیشنهاد کرد صلاح نیست بیش از این به این حالت ادامه دهید و مردم انتظار دارند که شاهنشاه به کارهای عادی خود بپردازد هر کس در این دنیا بعد از مدتی زندگی را بدرود خواهد گفت و پدر شما هنگام مرگ توصیه کردند که به کار مردم بپردازید شاهبرج فورا گفتار نخست وزیر را پذیرفت و به کشفرداری پرداخت در این فاصله شاه صالح و ملکه مادر و شاهزاد خانومها به کشور خود در زیر دریاها مراجعه کردند ولی بعد از چندی شاه صالح به تنهایی به دیدن ملکه گلنار و بعد آمد و آنها از آمدن او خوشحال شدند شاه صالح از حسن تدبیر و کفایت شاهبد تعریف میکرد که نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای دور دست نیز از تغییرات و اصلاحاتی را که او در سراسر سر کشور پرید آورده او را تحسین می کنند و شهرت شاه برد به دورترین کشورها هم رسیده است. یکی از روزها بعد از خوردن غذا شاه برد در گوچه روی صندلی نشست و پشت سر خود را روی بالش تکیه داد و چشمانش را بست و حالت خواب به خود گرفت. در این هنگام شاه صالح با ملک گلنار مشغول صحبت بود و می گفت خواهر. شوخت جوان شایسته و از لحاظ بدنی هم بسیار ورزیده و نیرومند است و هیچیک از جوانان را من ندیدم که قدرت بدنی و ورزیدگی عضلات او را داشته باشند او اکنون وارد بیستمین سال زندگی خود شده و شاهزادگان دیگر در این سن عموماً ازدواج می‌کنند و بدون همسر به سر نمی‌برند حال که تو همسر شایسته‌ای برای او در نظر نگرفته ای، من دختری را از شاهزاد خانم های زمینی که در مرتبه پایین‌تری از ما ها به شمار میروند در نظر خواهم گرفت البته شاهزاد خانومی که شایستگی شاه بعد را داشته باشد ملکه گلنار گفت من در این باره با شاه برد گفتگوی نکرده ام زیرا اصولا در این مورد فکر نکرده بودم و خیلی خوشحال می شوم که تو شاهزاد خانمی را که شایستگی شاه باشد معرفی کنی شاه پاسخ داد من شاهزاده گوهر، نختر شاه کشور سمندل را در نظر دارم. ولی شاه سمندل پادشاه بسیار مغرور و خودپسندی است که خیال می‌کند همه شاهان دیگر در درجه‌ای پایین‌تری از او قرار دارند و به این جهت مذاکره با او کار سحلی نیست. اما با وجود این من شخصا به او ملاقات و مذاکره خواهم کرد. ملک گوندار درباره زیبایی و دانایی شاهزاده گوهر پُرچشهایی از شاه ساله کرد. و او پاسخ داد چهار سال پیش که او را دیدم دختر بسیار زیبا و تربیت یافته ای بود و با یه تا الان باز هم زیباتر و داناتر شده باشد سپس ادامه داد نمیخواهم خواهم شاه سخنان ما را در این مورد بداند ملک گلنار به او اطمینان داد که شاه پاد خواب است و بعد از نگاه کردن به صورت او از نزدیک به برادرش گفت اکنون میتوانیم به صحبت های خود ادامه دهیم شاه خواب نبود و با شنیدن این سخنان با دقت بیشتر به گفت شنود مادر و دایی خود کنتکار شده بود. شاه صالح گفت: نمیخواهم که شاه بج از زیبایی شاه گوهر آگاه شود زیرا میترسم عاشق او شود. آن وقت در صورتی که پادشاه کشور سمندل با خواستگاری ما موافقت نکند شاه بج ناراحت خواهد شد. ولی من اول به خواستگاری میروم. اگر پادشاه موافقت نکرد. آن وقت شاهزاده خانم دیگری را باید در نظر گرفت شاه برد که تموم حرفهای مادر و دایی خود را در زیبایی شاهزاده گوهر شنیده بود نادیده آشق شد و آن شب را تا صبح مرشه برهم نزد روز بعد شاخصاله از ملک گلنار و شاه اجازه خواست تا به کشور خیش بازگردد ولی شاه میدانست می هدف که هدف از بازگشت به کشور خود به خاطر گفتگو با پادشاه سمندل و خواستگاری از شاهزاد گوهر است خیلی دلش میخواست که او هم همراه شاه صالح به این سفر برود ولی از گفتر آن شرمی می‌کرد. شاه برد برای آن که با شاه صالح درباره گوهر سخنی بگوید به بحانه شکار دو سه روزه از شاه صالح خواست با او به شکار برود او هم پذیرفت و در روز معینی به عظم شکار از شهر خارج شدند و در طول شکار چندین بار شاه برد خواست درباره گوهر با شاه ساله سخن میگوید ولی باز شرمهاممانانه شد و چیزی در این باره نگفت در میان شکارگاه هنگامی که شاه ساله و همهی همراهان از او عقبتر بودند در کنار چشم ساری که الافار انبوهی بود از اسب پایین آمد و اسب را به درختی بست و روی اللف افتاد و شروع به گریستن کرد و مدت‌ها در همین حالت باقی ماند شاهساله که شاه برج را در میان همراهان ندید نگران شد و از آنها پرسید شاه برج را ندیدید؟ آنها هم اظهار بی اطلاعی کردند و نگرانی او بیشتر شد و دستور داد به اطراف پراکنده شوند و هر سورا را جستجو کنند. شاه ساله حساس کرده بود که از روز گذشته شاه برج همهاش در فکر فرو رفته است و اگر هم از او پرسشهایی هایی میشد پاسخی نمیداد و یا آنکه کوتاه صحبت میکرد و علت آن حالت را نمیدانست. تا اینکه سرانجام محلی که شاه استراحت کرده بود رسید و حالت گریه او را که دید فورا حد زد که شاه برد نه تنها تمام سخنان او با ملک گلنار را شنیده است بلکه دلباخته او هم شده است شاه از از پیاده شد و به سوی شاه رفت و شنید که سخنان زی را میگوید ای شاه زیبای سرزمین سمندل من تردیدی ندارم تو زیباترین ترین خانم های جهانی. و زیبایی تو با آنها قابل مقایسه نیست تو مانند خورشیدی و آنها چون ماه و ستارگان؟ من در این لحظه قلب و روح خود را به تو تقدیم می کنم. ولی کجا تو را بیابم تا آن را به تو تسلیم کنم شاهزاده خانم، دل را عزیزم این دل فقط به تو تعلق دارد و بس تو همیشه در قلب من خواهی بود سال فرن خود را به شاه برد رسانید و گفت معلوم است شما سخنان من و ملک گلنار را شنیده ای شاه بعد گفت آری دایی عزیزم همه بیانات شما و توصیف شما را از زیبایی شخصاد گوهر شنیدم ولی شن شد عشق خود را نسبت به شخصاد گوهر برای شما فاش سازم من به شما اعتراف می کنم که شخصاد گوهر را دوست دارم و از شما که مرا دوست دارید خواهش می کنم هرچه زودتر پادشاه سمندل را راضی کنید تا با ازدواج گوهر با من موافقت کند و اگر روی مساعد نشان ندهد من از حسرت عشق او خواهم مرد سخنان شاهبد، شاه صالح را متأسف ساخت و سعی کرد به شاهبعد به فرماند مذاکره با شاه سوندل چقدر کار دشواری است زمینا از شاهبعد خواست که در این راه شکیبایی بیشتری نشان دهد تا او اول به کشور خود سفری کند زیرا قیبت طولانی او ممکن بود موجب شورش علیه او شود شاه بعد گفت شما اگر مرا واقعا دوست می داشید این گونه با من سخن نمی گفتید و چه زودتر شراغ شاه سمندل می رفتید این نخستین درخواست من از شما بود که شما آن را نمی پذیرید شاه صالح پاسخ داد من تا زمانی که ملکه گلنار موافقت نکند نمی توانم شما را همراه خود به کشور سمندل ببرم چنانچه او موافقت کند من اطاعت می کنم و هرچی شما بفرمایید انجام خواهم داد شاه گفت شما می دانید که ملکه مادر من هرگز حاضر نمی شود من از او جدا شدم و به کشور دیگری بروم و شما هم این را بهانه خود کرده اید که از خواسته من سرپیچی کنید این هم دلیل دیگری نیز بر بیمهری شما نسبت به من است شاه ساله که وضع قمنگیز شاه را دید دلش به حال او سوخت و حلقه انگشتری خود را از انگشت خارج کرد و به شاه بعد تسلیم کرد و گفت این همان انگشتری است که اسم اعظم یعنی نام سری خداوند همان نامی را که روی مهر حضرت سلیمان حک شده است روی آن حک کرده اند تو این را در انگشت خود کن آن وقت می توانی به دریا بروی و در آسمان ها نیز به پرواز درایی شاه بچ انگوشتری را گرفت و به انگشت گرد آنگاه هر دو سبک بار و نرم به هوا برخاستند و به سوی دریا پرواز کردند و بعد هم در دریا فرور هستند پادشاه صالح و شاه بچ فورا به قصر شاه صالح در زیر دریا رسیدند و شاه صالح او را به حضور ملکه مادر که مادر بزرگ شاه بود برد شاه بج شاه ایران دست مادر بزرگ را بوسید ملکه مادر هم او را در آغوش گرفت و بسیار خوشنود شد و گفت از دیدن یک دنیا خوشحال شدم من نمیپرسم کجا میروی ولی آرزو دارم هر کجا میروی سلامت باشی مادرت ملک گلنار دختر من باید بداند قصد رفتم رفتن به کجا را داری؟ شاه بعد سعی می کرد که مادر بزرگ نفهمد که او بدون آگاهی مادر به اینجا آمده است به هر حال شاه صالح ملکه مادر را به اتاق دیگر برد و در آنجا ماجرای عشقی شاهبج را نسبت به شاهزاده گلنار تعریف کرد و گفت به خاطر برج قصد دارد از شاه سمندل برای او خواستگاری کند وقتی ملک گلنار فهمید که پسرش عاشق شاهزاده خانم گوهر شده است شاه صالح برادر خود را بسیار سرزنش کرد زیرا معتقد بود سخنان او درباره زیبایی گوهر و بی احتیاطی او در معرفی و بیان زیبایی گوهر سبب شده است که نسبت به شاهصاد گوهر دلبستگی بسیار پیدا کند. گرچه شاهزاده گناهی نداشت ولی ملک گلنار او را مقصر می دانست و به شاهصاله می گفت شما که به افلاق پادشاه سمندل آشنایی و میدانی دانی که به خواستکاری هر پادشاهی پاسخ منفی داده است چرا فکر می کنی که تو را برتر از آنها خواهد دانست و به تو پاسخ مثبت خواهد داد؟ من میدانم که او به تو بی حرمتی هم خواهد کرد. شاه سال پاسخ داد به هر حال در مقابل کار انجام شده قرار گرفته ایم و شاه بعد برخلاف میل شما و من از زیبایی گوهر آگاهی یافته و اگر شاهزاده را برای او خواستگاری نکنیم از قصه تلف خواهد شد. باید هدایای ارزنده از, از بهترین سنگهای قیمتی برای شاه سمندل به همراه ببرم و از دختر او برای شاه ایران خواستگاری کنم و بگویم که شاه ایران یکی از نیرومندترین شاهان جهان است. ملکه گفت کاری نیست ولی فراموش نکن احترامات بسیار نرباری شاه سمندل باید رایت شود ملکه هدایا را خود تهیه کرد و مقادیر بسیار الماس و یاقوت و زمار و درشته های و سایر سنگ های قیمتی را در صندوقی گذاشت و به شاه سالح داد و او هم آنها را برداشت و به سرزمین سمندل رفت و وارد قصر سلطان شد و احترامات شایسته به جایابد و, و زمین ادب بوسید شاه او را در طرف چپ خود نشانید و خوش آمد گفته پرسید چه فرمایشی دارید شاه صالح بعد از تعارفات بسیار نهایت فروتنی و ادب پاسخ داد درخواست من چیزی است که انجام آن در قدرت شماست و من میخواهم به عرضتان برسانم چون تا روابط بین دو خانواده سلطنتی ما دوستانه بوده است اینک میخواهم که با انجام شدن ازدواجی بین این دو خانواده بر استحکام روابط بین دو خانواده سرطنتی افسود شود شاه سمندل با شنیدن سخنان شاه ساله به خنده افتاد میتاری از فرط خنده پشت خود را به بالش تکیه داد و با لحن بسیار بیعدبانهی گفت شاه ساله تا حالا تصور میکردم تو قادشاه خردمند و دانایی؟ حالا فهمیدم که اشتباه میکردم بگو ببینم مگر عقلت را از دست داده ای که چنین خیال پوچی را در مغز خود راه داده ای؟ چگونه فکر ازدواج؟ آن هم با چنان شاهزاده خانم بسیار مهمی چون دختر من افتاده ای؟ شما باید فکر میکردید که بین ما تفاوت بسیار است و نمی بایستی سبب می شدید که در یک لحظه احترامی را که برای شما قائل بودم از دست بدهم؟ شاه صالح با وجودی که از سخنان شاه سمندر خشمگین شده بود خش به خود را مهار کرد و سعی کرد از حدود ادب خارج نشود آنگاه با مهربانی گفت من برای پادشاه جوان کشور ایران که خواهرزاده‌ی من، و پادشاهی مقتدر و پرآوازه است خواستگاری می‌کنم تردیدی نیست که شاهزاده گوهر از هر جهت مانند ندارد ولی شاه بچ هم در میان شاهان دیگر شهرت فراوان دارد او پادشاه کشور پهناور و شاهنشاهی بزرگی است که پیوند زناشوی او با شاهزاد گوهر بر هر دو خاندان سلطنتی سودمند خواهد بود هیچ پادشاهی در عظمت و نیروی شاه ایران تردید ندارد که پیسر سمندل پس از شنیدن این سخنان براشفت و فریاد کشید چگونه جرأت چنین گستاخی را داری و با من این گونه سخن میگویی و نام گوهر را بیش از یک بار بر زبان میرانی تو کیستی؟ خواهرت کیست؟ پدرت کیست؟ کاهرزاده ادّی که کیست که از آنها نام میبری؟ آیا او هم سگی چون خودت نیست ها بیایید و گردن این آدم گستاخ را از فکرش جدا کنید با فریاد شاه نگهبانان به داخل تالار آمدند ولی شاه صالح که از نیرومندی جوانی برخوردار بود با چالاکی تمام و قبل از که نگهبانان شمشیرهایشان را از نیام بیرون آورند گریخ و خود را به در قصد رسانید و در آنجا با لشکری که ملکه مادر برای یاری او فرستاده بود بود روبرو شد. ملکه مادر پیش بینی کرده بود که شاه سمندل با و خوی تند و قرو را میز خود ممکن است سبب خطرات جانی برای شاه شود. رضا بعد از عظیمت او، لشکری از سپاهیان خود برای یاری و حفاظت پسرش به سوی قصر شاه سمندل اعزام کرده بود. سپاهیان ملکه همه را تارمار کردند و شاه سمندل را هم به گرفتند و شاه صالح اتاق و اتاق به دنبال شاهزاده گوهر در جستجو بود اما اثری از او نبود شاهزاده گوهر به محض اینکه به زد سپاهیان و حمله ای آنها به قصر پدر پی برد از قصر گریخ و همراه ندیمه های خود به جزیره خشک و بی و علفی فرار کرد شاه بعد که متوجه شد ملکه مادر مشغول فرمان دادن به سپاهیان و اعزام نفراتی تازه به قصر شاه سمندل برای سرکوبی شاه است و از طرفی دیگر شاه بعد خود را مسبب این جنگ و جدال میدانست خود را سرزنش کرد و از دریا به سطح آب بالا آمد و در هوا به قصد بازگشت به سرزمین خود پرواز کرد ولی راه را گم کرد و اتفاقا به همان بی آب و علفی که شاهزاده گوهر و همراهانش گریخته بودند بز زمین فرود آمد شاهزاده در زیر سایه درخت تنومندی پناه برد تا فکر مخشوش خود را آرامشی بخشد بعد از لحظهای چند صدای صحبت کردن این کسی را شنید ولی فاصله به میزانی بود که سخنان مفهوم نبود شاهزاده به سوی صدا جلوتر رفت و ناگهان در لابلای شاخههای درختان خانم بسیار زیبایی را دید که سیمای او چون خورشید میدرخشید قلبش فروریخت و با خود گفت این زیبا سنم حتما گوهر است زیرا کسی جز او نمیتواند به این درجه زیبایی برسد به هر حال خود را مقابل او و سلام و احترام به جای آورد و گفت لطفا افتخار دهید که خدمتی برایتان انجام دهم و هر امری دارید در اینجا و با علاقه‌مندی آن را انجام خواهم داد شاهزاده گوهر گفت ای بزرگوار از همراهیتان گذارم و بودن من در این جزیره بی آب و علف و ناآشنا امر بسیار غیرعادی و ناراحت کننده است برای ناگزیر بودم به این جزیره بگریزم من شاهزاده گوهر دختر پادشاه کشور سمندل هستم در قصر پدرم زندگی آرام و آسوده ای داشتم که ناگهان سر و صدای محیبی برخواست و به من خبر دادند که شاه صالح به قصر ما هم روبر شده نگهبانان را کشته پدرم را دستگیر کرده و قصر را هم آتش زده است من فقط توانستم با سرعت از قصر خودمان و خشونت شاه صالح بگریزم و به این مکان نامساعد پناه بیاورم همین که شاهزادی این سخنان را گفت، شاه بعد خود را به او معرفی کرد و گفت، نگران نباشید، شاه سال دوی من است و قصد تصرف سرزمین سمندل را ندارد، فقط برای خواستگاری شما برای من حضور شاه یعنی پدرتان رفته بود، زیرا من با تمام وجود به شما دل باختم و می دهم تا آخر اوم به عشق خودم وفادار باشم و پدرتان هم به زودی آزاد خواهد شد و همچنان به پادشاهی خود، در از زمین سمندر ادامه خواهد داد وقتی شاهزاده گوهر از دهان خود شاه بد شنید که تمام این بلاها را او به سر پدرش و خود او آورده است نسبت به او بسیار بدبین و خشمگین شد در حالی که تا پیش از آن که را معرفی کند از ظاهر آراسته و قیافه مردانه او علاقه در دل خود نسبت به او احساس میکرد شاهزاده به شاه نزدیکتر شد ولی به ظاهر مهربانی به او نشان میداد و از او پرسید شما فرزند ملکه گلنار هستید شاه شاهبج با خوشحالی پاسخ داد آری سپس شاهزاده گوهر گفت ملکه گلنار شهرت نیک دارد و پدر من اشتباه کرد که با ازدواج ما مخالفت نشان داده است در حالی که ما میتوانستیم در کنار یکدیگر خوشبخت باشیم آنگاه گوهر جلوتر آمد تا آنجا که شاه شاهبج دست خود را دراز کرد تا دست شاهزاده را بگیرد و ببوسد اما در همین لحظه چشمان مهربان شاهزاده تغییر حالت داد و شکل خشمانی به خود گرفت و با نفرت به روی شاه آب دهان انداخت و گفت بدبخت به شکل پرنده سفید با منقاری سرخ رنگ درای. در آی شاه برج هم بلافاصله به همان شکل درآمد. آمد شاهزاده گوهر به که از ندیمه های خود دستور داد پرنده را به قسمت بسیار نامساعد جزیره که فاقد هر گونه آب و علف است ببرد و در آنجا رها سازد ندیمه که شاه فرد را قبل از افسان شاهزاده گوهر دیده بود دلش به جوانی و زیبایی او سوخت و پیش خود فکر کرد بعد آنکه شاهزاده گوهر خشمش فرو نشیند از عمل خود پشیمان خواهد شد زیرا در این جزیره یک قطع آب هم پیدانه می شود و حتما این پرنده تلف خواهد شد با این ترتیب پرنده را گرفت و آن را به جزیره برد که در آنجا مردم رفت آمد می کردند. و آب و آبادانی هم وجود داشت و آن را در منطقه سبز و خورنمی که درختان میوه فراوان و ردخانه های پر آب داشت رها کرد حال برگردیم به شاه ساله که هنوز در جستجوی شاخصاله گوهر بود بلاخر از یافتن او نامید شد و به افراد خود دستور داد جستجوی او را دنبال کنند و پادشاه کشور سمندل را هم اثیر و زندانی کرد و نگهبانانی بر او گماشت تا در غیاب او او باشند. و شاخ صالح نزد ملکه مادر مراجعت کرد و گزارش اقدامات خود را به آگاهی ملکه رساند. نخواستین مطلبی که ملکه با او در میان گذاشت درباره شاه شاه بود که پرسید بر سر او چه آمده است. شاه صالح هم توضیح داد وقتی بین افراد ما و نگهبانان شاه سمندل نبرد آغاز گردید من دیگر او را ندیدم. به نظر می در آن گیر دار که خود را ایمن نمی دیده به گوشه پناه برده است. شاه ساله از ناپدید شدن خوهرزادش بسیار ناراحت شد زیرا او بر اثر سخنان خوهرزادش اقدام به از دختر شاه سمندل کرد و بدون آگاهی و اجازه ملیک گلنار شاه برد را همراه خود به کشور سمندل برد که منتهی به زد و خورد و ناپدید شدن شاه گردید شاه ساله خود را سرزنش می‌کرد که او سبب گردیده به جای عروسی شاه بعد با شاهزاده گوهر شاه بعد ناپدید شود. بنابراین نمیدانست به ملکه گلنار چه پاسخی دهد و به خاطر یافتن خواهرزادی خود مجبور شد اداره کشور خیش را به دست ملکه مادر بسپارد و به کشور سمندل برود و در آنجا شاه را در اختیار خود داشته باشد. و سپاهیان او در جستجوی شاه باقی. همان روزی که شاه صالح به سرزمین سمندل سفر کرد، ملکه گلنار هم به دربار ملکه مادر وارد شد. و از فرزندش خبری به دستاورد